قسط های هزار یک شب شب پنجاه و هشتوم. چون بازرگان نزهت و زمان را به منزل خیش برد جامعه حریر و فاخر بر او بپوشانید و به بازار رفته زیبرهای زرین و مرسع از برای او خریده بیاورد و گفت اینها همه از آن توست و از تو هیچ نمیخواهم، مگر وقتی که تو را نزد سلطان دمشق برم تو را از قیمت خیشتن بیاگاهان و چون تو را بخرد نیکوی هایی که با تو کرده با او بگو و از سلطان بخواه که سفارش مرا به ملک نعمان شهریار بقداد بنویسد که به فرمان ملک ده یک از من نستاند چون نزهت و زمان سخنان بازرگان بشنید به خروشید و بگریست بازرگان گفت ای خاتون چون است که تا نام بقداد بردم گریان گشتی مگر تو را کسی بدان جا هست اگر تو را پیوند با بازرگانان است با من بازگو که من همه بازرگانان میشناسم و پیغام تو را برسانم نصحت و زمان گفت من بازرگانان را نشناسم بلکن ملک نعمان را همی شناسم بازرگان؟ چون این بشنید بخندید و شادمان گشت و با خود گفت سخت به مقصود رسیدم بازرگان گفت مگر تو را پیش از این به ملک نعمان فروخته بودند نزهت و زمان گفت لا والله من با دختر او بزرگ شدم من بسی جای در دل او دارم و مرا بس عزیز دارد اگر قصد تو این است که ملک نعمان خواهش تو بجا آورد کاغذ و دوات بیاور که من کتابی بنویسم چون به بقداد روی آن کتاب را به ملک نعمان برسان و با او بگو که کنیزت نزهت و زمان را روزگار بر سر بازارها کشیده دست به دست همیگرداند گرداند و اگر مرا از تو بپرسد بگو که در نزد سلطان دمشق است بازرگان چون فصاحت و گفتار نقص او دید رتبت او در نزدش افزون شد و گفت آیا قرآن یاد گرفته ای؟ نزهت و زمان گفت آری حکمت و طلب نیز دانم و به فصول و بقرات و جالینوس شرح نوشتهام و تذکره و شرح برهان خانده ام و مفردات ابن بیتار مطالعه کرده و قانون ابن سینا را ایرادات دارم و در هندسه سخنان گفته و حل رموز کرده ام کتب شافعیه دیدم و حدیث و نحو آموخته ام و با علما مناظرات دارم و در علم منطق و بیان و علم جدل تعلیفات کرده و علم استرلاب روحانی نیک دانستم پس بازرگان را گفت کاغذ و دوات بیاور کتابی بنویسم که آن تو را از غمها خلاص کند بازرگان چون این سخن بشنید عجب آمدش و گفت خوشبخت آنکه که تو اندر قصر او باشیم از بازرگان قلم و قرتاس بیاورد و در پیش روی نزهت و زمان زمین ببوسید نزهت و زمان نامه و خامه به دست گرفت و این ابیات نوشت از عشق روی دوست مرا خواب و خر نماند بی او قرار و صبرم از این بیشتر نماند از تن یکی خیالم و ان در دو چشم من الا خیال آن سنم سیمبر نماند روشن همی نبینم بیسوی سوی او جهان گوی به دیدگان من اندر بسر نماند کسی که فکرها بر او چیره شود و بیداری نظارش کند پس تاریکی او را روشنی اندر پی نباشد و شب را از روز نداند و در بستر جدایی این سوانسو بگردد و با میل بیداری اکتحال کند و پیوسته ستارگان بشمارد پس شرح حال او دراز کشد و از برای او یاری جز سرشک نباشد. پس از آن؟ سرشک از دیدگان میریخت و این عبیات نیز بنوشت ای از بر من دور همانا خبرت نیست که از مویه چو موی چو مویی شدم از ناله چو نای یک روز به سالی نکنی یاد کسی را کایت زقم عشق و روزیش به سالی روزی بودایا که دل و جان به فروزم زان روی که شهری به به جمالی و در انجام کتاب نوشت که این از قریب اوتان نزهت و زمان است به سوی ملک زمان ملک نعمان پس کتاب فرو پیچید و به بازرگانش بداد بازرگان کتاب بگرفت و ببوسید و مضمون بدانست خورسند و فرهناک شد و گفت منزه هست خدایی که تو را بیافرید چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو است.